فصل یازدهم بی شعور دیوان سالار تا هنگامی که لوهی گلین نانوشته است کار شما پایان نگرفته است. صاحب دیوان کورش پنجم به زیر دستانش برای آدم بیشعور، هیچ چیز ناامید کننده تر و خورد کننده تر از اون نیست که احساس کنه قدرتش برای تسلط بردیگران به افول نهاده. این مسئله در حکم اخت شدن اوست که البته نیست هیچ بیشعوری به چنین عذاب علیمی دوچار بشه. روش آمریکایی برای پناه دادن به این بی اینه که در یک دستگاه اداری نظامی یا دولتی مشغول به کار بشن به این ترتیب به راحتی خواهند توانست آدم‌های های و خوشبینی رو که هنوز فکر می‌کنند دولتی که وجود داره دولتی از مردم برای مردم و به دست مردمه مرعوب کنن و بر اونها تسلط داشته باشند. حقیقت اینه که ما با دولتی سر و کار داریم که از بیشعورهاگ اداری تشکیل شده و برای راحتی اونا فعالیت میکنه. جولیا کیدز در خاطرات خود با عنوان لذت پلشتی در دوران خدمت خود به عنوان کارمند دونپاگه در بخش صدور گواهی نامی رانندگی می نویسه. بازی مورد علاقه ما سرگردان کردن ارباب رجوهایی بود که کارشون هیچ مشکلی نداشت. بعضی وقتا چهار پنج بار اونا رو بر تا سرانجام گواهی رو که از اولم آماده تحویل بود بهشون بدیم. در امتحان کتبی کاری میکردیم که که جوابهای درست نادرست نشون داده بشه و برای امتحان عملی یک سری مقررات از خودمون در میآوردیم. مثلا این قانون رو که گردش براست با وجود چراغ قرمز آزاده شنیدید؟ خب این از همون قوانینی بود که ما از خودمون دروردیم تا مردم رو دست بندسیم. بلاخرم اونقدر تعداد آدمایی که این قانون رو باور کرده بودن زیاد شد که مقامات ایالتی مجبور شدن اون رو در متن قوانین وارد کنن. من که میگم قدرت واقعی یعنی این، همه کسایی که در ادارات کار میکنن بیشور نیستند. هرچند همگی در معرض ابتلا قرار دارند. اغلب به یک دوره کارآموزی سخت و طولانی که خدمت نظام وظیفه خونده میشه نیاز هست تا افراد برای نشستن پشت میزها و کاغذ بازی کردن آماده بشن و البته در بیشتر این کارها سر و کار مستقیم با ارباب رجوع وجود داره ساده‌ترین موارد از این دست رو میتوان در اداره پست تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی دید. جاهایی که گویا تعداد شکایات رسیده علیه کارمند نحوه ترفیعات و اضافه حقوق او رو مشخص میکنه. به این صورت که هر چقدر شکایت علیه یک نفر بیشتر باشه، بخت او برای پیشرفت بیشتر میشه. طلاون مزاج هم معمولاً بی نمی نمیمونه. هرچقدر قوانین انعطاف ناپذیرتر باشه کار کردن برای بیشعورها شعورها کسالت و خسته کننده تر میشه و از این رو تأمین حیجان برای کارهای پشت میزی اهمیت زیادی پیدا میکنه ارنستاین کابالشینسکی در اداره ترافیک سان میگه اگر از یارو خوشم بیاد بهش سخته نمیگیرم اما اگر از ریختش خوشم نیاد کتاب قوانین راهنمایی رانندگی رو میندازم جلوش و میگم بگیر این را بخون تا بفهمی رانندگی قانون داره. پاش برسه استنتاقم میکنم. آدولف شنایدر در کتاب بیشورهایی که من شناختم، بیشورهای دیوانسالار رو در زمره بیشورهای آبزیرکاه ترشرویی محسوب میکنه که مترسد قدرت و فرصتیان تا تبدیل به بیشورهای گهگیر بشان. این افراد لیاقت و شهامت لازم رو برای اینکه بی تاجر یا حتی بیشعور سیاست سیاستمدار بشن ندارن اما حمایت و مسئولیتی که تمام مستخدمین دولت از اون برخوردارن به اونا چنان قدرتی میبخشه که به راحتی جوگیرشن در چنین فضاییه که حقیرترین آدمای مردنی چنان گلدور میشن که آدمای بیعرضهتر بی ارزه تر و حقیرتر از خودشون به پاشون بیفتن و تملقشون رو بگن و براحتی حق رو ناحق کنن. بعضی از اینا انقدر قوی میشن که در زمره بیشعورهای تمام عیار قرار میگیرن و تا حد مدیریت و معاونت هم بالا میرن. زمان ارزشمندترین ترین سلاح بیشعورهای پشت میز نشینه. اونا مقدار فراوونی از این سلاح رو در اختیار دارن و شما هیچ. اگر درخواستی بدید، اعلام میشه که دو هفته قبل آخرین مهلت برای تسلیم اون بوده. اگر برای صدور جواز کسب بخوای تقاضا بدید، متوجه میشید که فقط ساعت شش تا هفته صبحای پنجشنبه برای این کار در نظر گرفته شده. اگر قبل از شروع پروژه ای احتیاج به اخز موافقت نامه ای داشته باشید، قطعاً باید صبر ایوبم داشته باشید. همیگه اینا بخشی از مراحل اداری محسوب می شند. بیشعورهای اداری در کشف شیوه های جدید کاغذبازی و به تخیر انداختن کارها قوهی ابتکار شگفتنگیزی دارند. و البته اگه تمام کاراتون قانونی و طبق مقررات باشه و هیچ موشی نتونه در اون بدوه، به سرعت شما رو در چرخهای بیپایان که به اون امروز برو فردا بیا گفته میشه میندازن کارمندی که کارتون زیر دست اونه حتما باید از رئیس خودش اجازه بگیره چرا که استقلال و خودرأیی در مراکز اداری ممنوعه رئیس هم به دلیل مشابه تصمیم میگیره که این پرونده رو با چند تای دیگه در فرصت مناسبی خدمت جناب مدیر کل عرضه کنه او هم صلاح خواهد دید با مشاورش مشورت کنه و به این ترتیب پروندتون در هزار توی نظام دیوان سالاری فراموشو مدفون میشه هیچ چیز بیشعور های دیوانسالار رو خوشحال تر از این نمی کنه که اونقدر ارباب ارباب جو رو عذیت کنن که از دستشون شاکی بشن و زبان به اعتراض بکشاین. البته ارباب رجو اعتراض رو حق خودش می دونه. اما اون چه نمی دونه اینه که یه بیشعور دیوانسالار استاد کلکل کل و توجیهه و با شبکه عظیمی از مناسبات اداری پشتیبانی میشه که قانون اولش اینه. هوای خودتو داشته باش. کارمند بیشعور خیلی زود میفهمه که صدا بلند کردن چه اثر شگفتانگیزی در نشان دادن قدرت و برتری او داره سپس او با همین صدای بلند و آمرانه شروع به بیان قواعد و قوانین میکنه و هر قانونی رو هم که احتیاج داشته باشه از خودش در میاره بعد اگر احیانا ارباب رجوعی شروع به چون و چرا کنه و بخواد دلیل بیاره که اون طوری که اون میگه نیست با تحکم اعلام میکنه که مجبور نیست این توهین ها رو بیشتر از این تحمل کنه و از اتاق خارج میشه ارباب رجوع بیچاره هم که هاج و واج موده نمیدونه که اون موقع زمان استراحت و چایی خوردن اون کارمند بوده و دلیل واقعی خروج او پیوستن به دوستانش برای گپ و استراحت همه مشکل بیشعورهای پشت میز اینه که روز کاری پس از 8 ساعت تموم میشه و اونا مجبورن پس از اون به خونه و نزد خانواده برن که هیچ کدوم از اعضای اون این مسخره بازیارو تحمل نمیکنن هرچند می دونن فقط 16 ساعت تا بازگشتشون به محل کار و آغاز آزار و تحقیر دیگران باقی مونده